حکایت یکی از علما خورنده بسیار داشت و کفاف اندک با یکی از بزرگان که در او معتقد بود بگفت روی از توقع او در هم کشید و روز سوال از اهل ادب در نظرش قبیح آمد زبخت روی ترش کرده پیش یار عزیز مرو که ایش بر او نیز ترخ گردانی به حاجتی که روی تازرو و خندان رو فرو نبندد کار گشاد پیشانی، آوردند که اندکی در وظیفه او زیادت کرد و بسیاری از ارادت کم، دانشمند شون پس از چند روز مودت معهود برقرار ندید، گفت بِعْسَ الْمَتَائِمُ و هی نزل یک سبوها، الْقِدْرُ و القدرو مَخْفُوزُن، نانم افزود و آبروگم کاست، بینبایی به از مزلت خاص.